اللهم صلی اللہ محمد و محمد عوضو بالله من الشيطان اللہین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم صبح شما بخیر تبریک عرض کنیم یاد و ایام و شوالله پر از خیر و برکت و مبارک بشه ما به بخش در واقع من کنتو مولا فعضو علی مولای دعا رسیده بودیم و نکات تقریبا یه سرفصل نسبتا فیم کاملی شد که همه چی گفته باشیم راجبین خودش می‌تونیم بحث قدیر جدا بشید به عنوانی مسئله سرفصلی که حالا عدقل عد سرخطها گفته شده و اینکه عجیبه عجیبی که موسا علیه السلام به تور میره قران سر خاطر جانشینی میذاره بعد یه دیووار موسی پیامبر کلان میخواد از این دنیا بره امیتو ول کرده به حساب خود مردم نه چه مردمی در ادامه میرسیم به این فراز و قالا من کنت علی نبیه فعلی امیره پس فرمود و گفت پیامبر هر کسی که من نبی او هستم بودم پس بلافظ ده امین علی علیه السلام امیر و بست و قال انا و علی من شجرت واحده و سائر و من شجر شتا که من و علی از یک ریشه یک درخت هستیم و بقیه مردم از درخت یا درختان دیگه چون این رو باز میکنم براتون من اشجار هم داریم ملا. ما دو تا قسمون فرق می‌کنه و کل بنیبشری که آفریده شده ما از یک ریشه یک درخت یک اصل یک بدنیم و بقیه کل مردم حتی دربته دیگه کل انبیه حتی از شاخهای دیگه از درخت های دیگه پس هر کسی من فعلا فرازوار من کنتان انا فعالیان امیرو اون رو بگم بونم میرس میشم هر کسی که من نبی هستم نبی هم ترجمه کردیم جلسات قبل هر کسی که من در واقع یک خبری براشو بردم آشکار کننده یک حقیقت مهم و در چشم هستم چون نبی دوتا معنی داشتیگه دم دستی ترینیش همون کسا نبع میاره خبرمز و بدونه که حالا علی علیه السلام امیرش در مورد نبی و این که خاتمال بودن صحبت رو کردیم حالا اینجا من واقعا به این فکر میکردم که باید یه برنامه تلویزیون که این کار رو نمیکنه حالا تحجب میکنن برنامه باز خوب بود اسم برنامه سوره بود کانال 4 یه روحانی بزرگ هم مجریش رو سرطان گیره فوت شد به رحمت خدا رفت برای خوبی بود تخصصی کارشناس آوردن بحث میکرد انا خیلی از شبه ها دست باید بحث میشیم حتی اگه شبه هم نیست این نیستشی بچه مردم به دنیا بیان بلد باشن مثلا ژنتیکی روشون مثلا تنظیمات دینهشون روشون نسبه اما باید دوباره آموزش ببینم دوباره باید صحبت کرد من خودم همیشه خودم تذکر میدم میگم وقت شده یه بحثی رو شروع کردی از منتعاله اونه هدف من این بود اون چارتی که داشتم از منتعاله سیاهی لا الهه بسیاری الله. از بحثی محلوط به س... شیطان پرستی و سحیونیزم اونم چی شروع کردیم ما رو مالبان وسط شهر دای ندبه کاملا این طرف یعنی من برو بحث داریم صحبت میکنیم. هدف دینه همتایی تهش بتونی سال زال رفت پوشش بدی هره این بچه های دعنویدی هم اینا دوباره یه رایفی پوری میخوان که بره از همون جایی که اینا گیم بازی میکنن از همون جایی که اینا درگیرشن شروع بکنه از قضاوت شدن هم نترسه حالا شما فرض که بخواه بخوا برید تو دل نوجوانات به زبان خودشون حرف بزنید دیگه شروع میکنن وزن سنجی شما و غذابت کردنتون آدم های کسیفی هن. جدی میگم یعنی اینا من للخیر هن این آدم که اینطورن. همه جام هستن برخشون مدوم عادی بعضیشون مسئولن مسئول هن مسئولن چرا؟ چون اینا منع میکنن در راه خیر که شما حالا برید من دیگه بازده میکنم برید این صفت در قرآن اولا در روایت راجعش بحث شده راجع کی استفاده شده یکجا من کان له سبین فلیتصاب یعنی اگه نفع بچه کوچیک داره بعد بارش بچه بشی تو تو ارتباط بگیر بفهمه یعنی این جامعه اون روحانی که کنار عمو پورنگ بود و بنده خدا همیشه ها که پویا اون نمیدونم چی هستن اون کار شریف و بزرگی داره انجام میده او داره به فرمایش محسوم عمل میکنه چون داره به فرمایش محسوم عمل میکنه حالا مثلا تو خیابونم ببینه هم بکشی جدی نگیری طرف رو بگی حالا مثلا قبای این رنگی تنش کرد و میخواه بر بچه پنج شیست ساله میخواهد بره تو ارتبیر چیکار کنه سالهای نوری با اهل بهت فاصله دارید سالهای نوری پیامبر چهار دست و پا میزد وسط خیابون برای بچه کچیک نشنید ماجرا رو نماز جماعت دیر شد یا خدا پیغمبر چی شد کجاست نا دارم دو تا بچه دارن رو دوش پیامبر نشستن گفتم بابا بیا بریم نماز جماعت مونده این کارا چیه؟ <تصفيق> غالی امروزی و خب من مرکب اینام اینا منو خریدن من رو اجاری های در قول اینام در عهد با اینام که مرکبشون باشم من از اینا بخرید راضیشون کنید چی میخوای گردو؟ یا اول فض ما الان گردو اینجا گید ببینید این فضا رو بحث های دیگه هم اصلا باز شون با یکماش بیمار طرفیم باز نمیدون بگنم مثلا نمیدونم این سندش چیه نمیدونم فلانه بابا برخورد با برخورد احلیت به کودکان اصلا از حرامن شمس مثلا بشه دو دسته میکرد ماهاشون پیامبر میداد دست اینا میگفت این زبان ابلال افسار مرکب رو تونه برشون صدا در می آورد حالا یه استادی و خیکت بستن دیگه زیر حیعت علمی نوید باشن بری صحبت کنی عجیب اینا فاصله میگیریم می ای نسل جدید جنریشن زی نسل زد و چیکار کنیم چیکار کار نباید بکنیم برید به چپید تو همون جایی که قایم شده بودید نسل زد می کشنه تون بیرون <تصفيق> تو ماجره محصا کپ کرده بودن دیگه بازویه میگو من تو عمرم همچی چیزی نیدم نه اون میفهمد من چی میگم نه من میفهمد نمون چی میده برای چونگه فاصله افتاده نمیتونیش فکر میکنی اصلا به دنیا میان مثلا ولاعت مطلقی فقیر توجیح اصلا میتونم بیرن مناظره کنن مثلا یک کلیپی ساخته شده بود جلو در دانشگاه هنر خانومایی که اجاب نداشتن و عکس میروسه مصویر نشانشون میداد 17 -18 نفر رد شدن فقط یکیشون شناختش آره عزیزم 88 سال 88 که اون اتفاقات افتاد یه نفر اول 1080 بوده باشه اون موقع 8 سالش بوده چی می‌فهمی سیاست؟ اگه تو همین جمع چرخیدی حالا اونایی که سفید کردن بزرگتر جلسه رو کار ندارم. عکس مثلا مرهوم پرورش دادی باز آموزش پرورش بوده. شناختن اینا میروسن میشناسن؟ از هیچده نفر هیوده نفر نشناختن و یه نفرم که شناخت اما ما با این کار امروز اگه اول ده دنیا اومده بوده باشه این بیست سالشه اوج جوانیه چه میکنی؟ چطور میخوایم جواب بدیم؟ برای همین باید زایهی داشته باشه مثل یک پیکره یعنی هر روز ادمایی که بیارن با همین نسل ارتباط بگیرن بیارن بیارن بیارن به جای برسونن بیارن دست بعدی اونی که ببره هر کسی باید ما های خواستیم مثلا این دست اینو بگیرن برسونی به جای میریم کسی نی برای یک خورده بیا بریم بیاری میخورده بیا بریم 20 ساله یارو داریم اینه؟ مردم تشنن سوال دارن آقا بیاییم مسئله سیاسی رو برای ما بگویم چی شده آقا این ترامپ اومده چی میشه سیاست خارجه این داخلی این وفاق قصتش یا سیاست داخلی آقا این بحثه آخر و زمانی الان باب سر بحث هیچ خبری نیست ملت ریختن توی این استاگرام یکی روایت میخونه که روایت میگه اصلا شور شورباییه توجه نمی کنم خدا به دادتون نرسل خدا به دادمون برسه چطور باید فاسخ بدیم بهترام خدمت امام صادق رفت سوال داشت که آقا گرفت یه همسایه داریم این میگه من اینو میگم و از آخرشش اشاگو ببین علیکم بالاحداث ول کونم بابا همسایه‌تون اور نوجوانون و نه نو حالا کن انگار مثلا حضرت علیکم بالاحداث فقط برای اون فرموده بوده نمیشنوید از گذر مثلا 12300 فاصله این صدا رو چند به من شما هم داره میگه برای همین من همیشه میگم خدای خوب این بخش مثلا توضیح بدم ندم چون میبینم مثلا یکی تو خیابون ما رو میبینه میگه آقا من مثلا سخنان میگم میپرسم بعضم میگم اولین بار کدوم سخنانی شنیدی که برای جذاب بود که بعد میبینم مثلا یه سخنرانی مال همین مثلا یه سال پیشه شنیدی تو هر همزمان باید یه جوری صحبت کنی که این ورودی جدیدم داشته باشی بعد رفتم نشستم قدمیار رو گوش کردم بعد رفتم نشستم مثلا فلان مقصود از خاتمیت این که خاتم الانبیا یعنی بعد از ایشون دیگه پیامبری نمیاد با باب وحی تشریعی که حکم دینی بیاره تشریعی صورت بگیر، بگیره بستشون حلال پیامبر حلال اله یام القیامم و حرام محمد حرام اله یام القیامم آلا. آلا. آلا. هیچ انسانی وحیی که بس چی آمل تشریع حکمی باشه بعد تعین تکلیفی، تحلیل حرامی، تحریم حلالی برعکس بشه یه چیزی نداریم اما این هرگز به این معنی نیست که ارتباط با عالم ما برا بسته شد از به هیچ مدیم چرا؟ چون ائمه هم با عالم غیر ارتباط داره. نه تنها ائمه حتی مؤمنینی که با تهذیب نفس عمل به بایدها و نبایدهای دین مراتب روحی رو تهی کردن اونها هم هجاب های رو کنار میزنن و به مقام کشف می میرسن یا قاضی که مثلا دو هزار سال پیش که نبوده که چش ملت شاهدان اون جلسه یکی شلام تبا تبایی نه هر کدوم ناخ شده در مورد خیلی از علما شنید این موت اختیاری داشت و یکی نمیدونم ايش یعنی میگه ما ماره رو اومد تو جلسه قورا همه ریختن گفت خجالت نمیشد ما ماره نميفهم موت بزن له بمیر به خود ماره مرد یه یعنی تیکه چوب شد افتاد قرانش که تماشید مثلا پایش زد بهش گفت بیدار شو زنده شو یو نو یعنی علما و اهل وچون کن از دلایلی که در مورد احلویت به قلوردهی رسیدن همین چیزها رو میدیدن قیب میگفت رسمن میشه پدر هایی بودن خداوکل بعضی از اون زماد هم الان هم هست قبلا هم بوده فکر نکنید طرف رفت خونه دستت به کنیز <تصفيق> آی قرایتی خب به جور دیگه اینو تعریف کرده <تصفيق> بعد عزیزم تو خجالت نمیکشی کشی گوم ای شما پشت دیوارم میبینی؟ دیده بودن مثلا چه میدونم امام هادی گریه گریم یکاد گاوش مرده بود ازت پاش زد به گاوه گلگو خرج زندگی ما از این شیره و اینا گاوه زنده شه بعدن ادعای شک گرفتن ادعا کردن اما هادی خداست نسعیریه ها چیست دیده بودن که ببین یه کاره ببین حضرت ایسا میگفتن خدا همچی دیگه مثلا به موسا چرا نگفتن هیچ کارهای دیدن از ایسا علیه السلام یه تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها گل و فوت کرد پرنده شد زندش کرد دیگه بابت خداست میدم باید امیر نگفتن اعز کردن برات امیرالمومنین بعد از بعد 25 سال به خلافت برگشت یکی از کارهایی که مادر امیرالمومنین حضرت علی پیشگویی زیاد داشت. که یه جوری مردم تفاوت اون ستای قبلی با رو بفهمن. از دور مثلا گروهی میادم گفتن ها ان ان نفرن از دور سیاسی ملت رو میسن شمردن یک دو سه 4 بعد حالا مثلا ابن عباس و اینا استرس داشتن نکنه عدد اشتباه در بیاد مثلا الان بعد نشه برای خلیفه مثلا برای عذ بعد میان اوه یه دونه کمه هی بابا زایه شدیم مثلا یارو یک کم اون ترداری میدوه تو بیابون رفت مثلا قضا حاجتی کنی خورده رقمونده بوده بس بقیه کارو نبوده دیگه این بسته نشده اینجوری اعتقادات شیعه است ما در مورد لبریم که محبت الوهی محل و حبوت وحید شما، نه در مورد پیانورا، همشون و مختلف الملائکه، محل رفت و آمد ملائکه از خونه وجود شما، اون جای، جایی جای که شما قرار دارید، جاییست که محل و حبوت و رفت آمد ملائکه خداست باقی این چطور قابل جمعه از ما گفتیم خاتم و لنبی دیگه تموم شد بله این رفت به معنی نیستش یه حکم شرعی مثلا این برانبرد بشه آها تا دیروز این حلال و درانه حرام یه اندیس خوردین یا یه پاورقی جدید داده شد نه هرچست در راستای هم شرح و شاخ شاخه و مویرک شدن همان شاخ است همونه با اون هرگز در تضاد میشه خود امیرالمومنین بعد از پیامبر میفرماد که نجوا بلاغه است به ابي ان ت و امي پدر و مادرم به فدات يا رسول الله یا رسول الله قدن قطع بموتك ما لم ينقطع موت غير من النبوه ولا انباء واخبار السماء پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا که با مرگ تو نبوت و اخبار آسمان عالم غیب قطع شد در حالی که با مرگ غير تو یعنی بقیه انبیا قطع نشد رفتی این در نبوت دیگه بسته شد مثلا در مورد آصف ابن برخیا اطلاعات داشت کارهایی ازش بر اومد حضرت خیز بحث بر همین فکر نکنید الزامن تأکید است که اینا پیام بر بودن نه در از خزالی یه حرف ایدم داده آسب نوبرخی نیست چون باز روایت داریم در موردشون این گونه افراد رو محدث میگن مثلا بعضت زهران میگن محدثه یزلا. یعنی با وجود این که پیامبر نبود که با او گفتگو میکردن باشون ایشون صحیفه فاطمیت همینه دیگه که بعضا زهرا گفته می شد امیرانو می نوشت کتاب فاطمه کتاب فاطمه دست هر امام زمان هر وقتی دیگه بخاری از پیامبر نقل میکنه از اهل سنت هم بگیم لقد کانفی من کان قبل کن من بنی اسرائیل رجال و کلمون من غیر انگکون و انبیا بدونید در بین بنی اسرائیل کسانی بودن که فرشته ها آنها سخن می گفتن کلام داشتن بدونه که پیامبر باشه همین کتاب نبایی تیالت که دهها ها قبل از به دنیا آمدن پیانبر نوشته شده در مورد کشیست نهمانه بره پنحاس. یا کتوفا یا خطوفا این یه بچه بود به دنیا آمد حرف می زد شروع که تو صد و ده تا جمله تا آخر و زمان رو پیشگویی کرد که اولین حرف علف اون بیست تا دوتا تا و دو تا بیست و دوتا دو دو میگفتی از علف تا تای قرشت میره با تای قرشت شروع میکرد یا برعکس همون اول گفت آتیا امتا امتی خواهد اومد که همه چیزو به هم میریزه تغییر میده کیان؟ از بن امتا از فرزه از پسر کنیز اسماعیل، از نسل اسماییل اون شاخه جوانه میزنه میدونستن اسم پیامبر به نام پدر به نام مادر من خودم پیدا کردم کسی کار نموالا طلبتون یه جا دیگه نام پیانبر فرزند عبدالله فرزند آمینا آمنه این طور میشناختن پیشگوی بوده میره همشن انبیاء بودن گفتن نه یه بچه به دنیا آمده تو دوازده سالگیم مرد ملا صدرا در مفاتیه القب میگه وح یعنی نزول فرشته بر گوش و دل به منظور معموریت و پیامبری هر چند منقطع شده است و فرشتهای بر کسی نازل نمی شود و او را معمور اجرای فرمانی نمی کند زیرا با حکم اکشملت لکم دینکم آنچه از این راه باید به بشر برسد رسیده است ولی باب الهام و اشراق هرگز بسته نشد و نخواهد شد ممکن نیست این راه مستوچه راوی میگه کن تو انه و ابو و محمد ابن امران من و ابو و محمد ابن امران بودیم محمد امران که مولا ابی جعفر خادم ابی جعفر در مکه فقال محمد ابن عمران محمد ابن عمران گفت سمعت ابو عبدالله از امام صادق ابو، از امام صادق شنیدم یقول که شو گفت نحنا اثنا عشر محدثا ما دوازده تا محدثی قال له ابو बसी والله سمعت من ابي منم شنیدم همینو والله منم شنیدم میگه یعنی یه بحثی مطرح کردن یعنی سه چهار نفر بودن به قولیه منم, منم شنیدم منم شنیدم و منم شنیدم یعنی به این اون یاران هزرات که نزدیک بودن همه شنید بودن باز امران میگه که قال علی ابو جعفر ان علی کان میگه مامالی میشنید پیام ملائک رو سخن ملائک رو سألت من یهدسو کشی باش حرف میزد؟ زد فقال لیه هدسو ملکو فرشته بود فقلت ف... فیغولن هون نبی یعنی يعني... پیان برود فحرک یده ها کذا اینجا ما نمیدونم حضرت چی جور دستش تکون داده یا دستش اینطور تکون داد مثلا شاید مثلا هم همچین حالتی نه هر جز مثلا که صاحب سلیمان او که صاحب موسا او ثبوت میده که میگه مثل اون همراه سلیمان این آصف ابن برخیا که صاحب موسا مانند همراه موسا خزر شاید یوشه ثبوت که چی؟ بله که زلغر اینم عجیبه ها یعنی جایگاه خیلی بالایی داره زلغرن بعضیا که مراقب باشن در مورد برقی از اشخاص تاریخی چطور حرف می زرن. اگر این در مورد کروش زلغرن همون بوده باشه خیلی جایگاه است. احتمال هم آدم بده باید مراقبت کنم. سمیعتو ابا عبدالله ما شنید این پنی... امام صادق می فرماد. ان لمن ينكت قلبه از ما از ماست که سایه کیو تو دلش میفته یک لحظه یک حقیقتی رو یقینی یقینی میبینه یه حسیست در ادراک انسان در در دل انسان به یک بار شکل میگیره قوی قوی حالا میگم چرا نکته استفاده کنه فیلو استفاده کردم و ان من لم ينؤتم في منامه در خوابش میبینه و من من لم يسمع الصوت مثل صوت السلسله في التشت یا صدای میشن میسه صدا شدن زنجیر توی تشت این, این؟, این یعنی چی این نوع صدا. این نوع دارم فرموده و لمن من من الله من یاتی صورت من و میکائیل و از ما کسی که صورتی بزرگتر از جبریل و میکائیل نزد او می آید چی کیه اون ابو وسیم میگه فقلت لهم من الذي یاتیکون بذلک چی اینا رو به تو میگه چی جوری تو میرسه قال خلق عظم من جبریل و میکائیل او یک مخلوقیست، است یک خلقی است بسیار عظیمتر اعظم از میکایل و جبریل علیه ما سلام باز عبا میگه کنتو من عبی عبدالله با اما صادق بودم فقالتو جلتو فداتشون بشم آقا علیه سر روح جبریل این روح همین جبریل نیست این روحت من آوردم کنار هم ببینید میام همین روحی گفته میشه همون نیست قال جبریل من الملائکه جبریل از ملائکه و روح خلق اعظم من الملائک روح مخلوقی اعظم و بالاتر از ملاک است. علیسال الله یا قول تنزل الملائک و بر رو خدا فرموده نازل کریم آیاره را تنزل الملائکه و رو داریم زیاد داریم آل امت صادقون مفهمون محدثون یا کل امامون من اهل بیت فهو و کل هر کدوم از ما امامان اهل بیت میشه دریافت داره یقین داره ابن عبی یعفور میگه با امام صادق عرضه داشتم ما میگیم آقا انا نقول نعليا لیون کتو فی قلبهی و یون فی و اذنهی و ما انجیم میگیم که داور دامی راه المؤمنین. انتشاره فرمود قال اینا علیاً کانه محدثان اینا علیاً کانه یوم بني قريز میتون روز جنگ و بنی قريز و بني نذير و بني کان جبريل ان يمينه و ميکايل ان يساره يحدثانه برايت میگه سال تو ابواب الله از اونسادم پرسیدم در مورد رسول و نبی و مح سونا سونا قاله از رسول الذيظی تعطیل ملاق و یغایه ها و عن الله تبارك اتقلا رسول اون کسی که مللاکه میان می بیندشون و یک مطلبی میرسه بلاغ باید صورت بگیره. نبی است که ارافی منامه تو خوابش می‌بینه، اما محدث که اون کسیه که صدای ملاکر میشنبه و یون غرفی اوزنهی گوشش حس میکنه و یون که تو فی قلبهی تو قلبش انداخته میشه حالا نکت یعنی چی؟ میگه یونکتوریشش نکته یعنی چی؟ نوعی از زدنه که اثرش بمونه نقره یعنی چی؟ اسم آلتشو شنیدید منقار نقار خونه ها همینه یعنی نواختن، سوراخ کردن، نوشتن بر سنگ و همثالون نقاره میزنن صدا عادی نیست یعنی این حکومتی ها این کار میکردن قشنگ میخواستن این مطلبی رو برسونن بخشنامه حکومتی بود فردا چون اگه کسی قلبش انجام میشد باباش در میومد بعد به همه میرسید واژه‌ی نکد یا نکس در روایات هم دره باره قلب استفاده شده که گفتیم یون کتفی تو قلب و هم با اوزن یون اون که توفی آزانه هم در مورد قلب به معنای الهام و افکندن در دل در مورد گوش هم به معنای همون نقره یا نقره نجوایی که تو گوش یا تأثیری که در گوش گذاشته میشه اما جالب نکته ای که داره میگه زدنی که اثرش سرش بمونه میگه یعنی چیزی نیست که از بین بره حرفی نیست ما یه حرفی میشنبیم فرق داره با این نکت و حرفی میشنیم بدن یادمون میرونیم کی بود به اون گفت یادمونیس. نه جاش میمونه برای همین این فعل استفاده شده یعنی شما یقین داری که این حرف و این ساعت این لحظه اینو شنیدم کلمه کلمه حرف حرفش این بود حرف حرفش این بود اش این بود اش این بود یعنی همون انگاه ضبط صوت دوباره همونو پلی میزنی دوباره اجرام میشه این میشه نکت و انقدر بلیغ که نقر استفاده شده برایش، قطعا همینه یقین داری شما ثابت و پایداره بدون ابهام، بدون شبه یعنی در قلب و قوه سامعه ائمه قرار میگیره قباطه این مربوط به رؤیت ملائک و تخاطب مخاطب قرار گرفتن با ملائک انقدر زیاده که قابل چشکوشی نیست الان مجلسی اینجا از اون طرف میگه نبی کسی که نبینه ببخشید بله نبین نبینه خواب ببینه ما هم کسی که فقط یه صدایی میشنبه و اما یقین داره یه چیزی به دلش میفته اما از اون طرف ما تخاطب با ملائک افتنیم قیامبر میفرموید یا هر هران که من ش... میشنمم تا هم میشنم من میبینم تا هم میبینی این چیلی این دوچار یه پاردوکس کرده الله مجلسی اومده پاسخ داده میگه بله مثلا میدیدشون مثلاً اما مخاطب نموده مثلا من دارم با شما حرف میزنم یه نفعی باقاله حرفی داره میزنه من صداره میشنم. اما با تو نیستم با شما نیستم منو مخاطب قرار نمیده خواسته جمعش کنه. و جمع شدنی هم نیست یعنی بازم رو هست که میشه گذاشت وسط پس این چیه؟ اون اولم همین هست که میخوام بگم باید برنامه که تلویزونی گذاشته باشه علماء تشریف بیارن بر مردم صحبت کن مردم گفته بشه حالا این برنامه آخر و زمانی که راه انداختیم حالا زبط هم شده میاد بیرون برای بحث رجوع و نشانه های ظهور و مهدویت دیگه ما هر چقدر کسی کار کردن هیچ کی کار, کار نمیکنه وظیفه خودمون انجام بدیم هرچند باز داد و بیداد کرد بگم به جهنم وظیفه خودمون رو انجام بدیم و بنام بر این بوده بدونید که علمای طراز اول مهدویتی کشور اومدن برنامه ضبط کردن من اون خوبیه چون بحث الی مخالفی هم دارن اومده اونجا حرف زده همونجا حرف زده شده شنیده شده شما میتونید قضاوت کنید. گویی چانتو نکتر نبات فراموش کنیم یعنی اینجام جای حل و فصل این ماجرا نیست. خب نه فرصت این بیتل... یعنی این موضوع جلسه است و نه جاشه و نه امکانش به این معنی است که فراهم باشه. یک سری از حرفها حتما باید از زبان علماش ایندو میشه جیر بگم بهتر خدمت شما عارض بشم اما قصه احلبه دلال حسابه چیز بگم متفاوت از بقیه است این چهاردن منصوم جدا کنید با قواعد دیگه نسنجید این یک دو بعضا احلبه توضیحاتی میدادن برای اینکه مردم دو چهار اشکال نشان وقتی میکردن بعدن یکی گفت خداست اون نمیشه جمعش کرد خود پیامبر در مورد امیرالمومنین میفرماود که من مطالب راجع تو میدونم که اگر بگم میدونم از فردا اینو میپرستند خاک پات برمیاد صدر خاک پاتو دعوا میشه مطالب ابوذر مطالبی حضرت سلمان راجب امیرالما میدونه که اگر بگه ابوذر کشششو نداره ابوذر کشششو نداره من رو شما بخواییم کشش فهمیدن این داشته باشیم تو مطالب چیه؟ به ذهن ما خطورم نمی کنه آه بدونید فهی نکنم مثلا میخوایم از سخفرم عمیل خدا که غلوه حرف چه اصلا توجه ما نمی کنیم تایش ما به طرف خدا سوی ما شنیدیم دید. نه اینجوری نیست اگر ما ها بفهمیم اصلا اهدی که با بسته شده بوده بعضا توی روایات، یه یک کنجی گوشه هایی چیزی در می دادم مبهوت میونه. اصلا ما با اون پس پرده خبر نداریم یه امام حسین می تو روز آشورا فعلی اتفاقات افتاده یک انسانی در ظاهر از نظر نفر اون طرفی ها گوشت و پوست و رفته همچین واقعی رو رقم زده چی اون پس برده است چی می دیدن میگفتونم الهل حساب پرانتز بسته اما انشاءاله دنبال این هستیم بشه یه برنامه من پیشنادم دادم به خیلی مدیرای آیستی ما گفتم آقا بیدیم برنامه دوباره راه بنوزید بشه انت تخصیصی باشه حرف زده بشه پس این نبی گفتیم یاله هر کسی منو پیغمبر میدونه سادشینه میدونه منتظر خبره بشون خبر رو برسونم با جای دیگه قرآنم جوره اما اصلا اون نبع خبر امیرالمؤمنین بوده اصلا پیامبر یکی از وظایفش بوده این خبر امیر باید رو باید میرسونده اگر نکنی این کار و فهما رسالت رسالت تو انجام ندادی نبوتت زیر ساله این چه خبریه که یک کسی مثل رسول الله با اون جایگاه نفر یک خلقت او باید بید خبرش رو چیه؟ نمیدونی درکی نداریم ولایت هست قومی ولایت یعنی چی؟ هیچ درکی نداریم تجلی ولایت روی زمین در وجود ناظرین امیر المومنین تجلی کرده بالا انشاءالله به شرط حیات سخنی نیمه شب، شبانم کناره بلایت در مورد اون محل تجلی نصرت الهی کیه و چرا به امام زمان امام منصور گفته میشه با بگم اگه تشنه حالا میگه و علی امیر است من که پیغمبر اومدم این خبر مزرگ برسونم که امیر علی است حالا امیری یعنی این چی؟ کسی که کنه دیگه ریش این کلمه به احتمال بسیار بسیار زیاد مصریه قبطیه امیر در خط هیروگلیف با یه جقد شاختار که به بغل داره نگاه میکرد این دیدی دیگه این طرفی یعنی بدنش حالت نیم روخه و اما سرش کامل چرخونده به سمت مخاطب و یک دونه دهن نشون میدادن این یعنی کسی که دستوراتش رو از طریق دهان گفته میشد و باید اجرا میشد مثلا یه دونه جوغت میکشیدن یه دونه دهن میذاشتن یه تاول چرکی میذاشتن یه <Glalik> قرص نون میذاشتن یه دارم بلرچین این منیش چی میشد مرکرتب یا مرخرتب یعنی سرپرست مومی مومیایی کننده ها این شکل ها کنار هم دیگه میشدین جغد مه محادل حرف مه دهان ر تاول چرکی کر یا خر قرسنان ته و بلرچین و یعنی دستور میداد بقیه باید انجام میدادن این از مصری وارد شبه جزیره شده احتمال داره یهودی ها دورانی که در مصر زندگی میکردن اینو گرفتن آوردن ممکنه در دورانی که اکسوس ها در اونجا بودن آوردن برگشتن دوباره به آسیا. چون آشوره ها حمله کردن رفتن چیزو گرفتن مصر رو گرفتن اینا آورده باشن بلاخره این توادل لغت شکلی گرفته کلن کلمات مرورد سلطنت و پادشاهی و دستور دادن اینجور چیزا عموماً ریشهش عربی نیست اینو بدونید متاسفانه که از جایی که بعد کسی پشتیش بکن توازه این مسائل باید زبانشناسی بدونه اینو بگم لغویون عرب زبانشناس نیستن اینو به شما بگم، یعنی برای کسی که زبانشانسی خونده بدیهیه که قدر حرفای غلط زدم؟ ریشه ی کلمه رو شاید پیدا کرده باشن اما اون ساز و و روشمند نیست با خیلی وقتا با یافته های باستانی جور نیست یافته های درست باستانی هم معمولا اینجوری مثلا ارز چند تا تو پست تویتری هم بازشتم مسئله مرد به پوشش در, در کل دنیا الان خوصواخین کل دنیا زبانی که امروز دنیا دار استفاده میشه زبان انگلیسی و نبیدم چه عموما از ایران گرفته شده کلمات فارسیه تغییر کرده خیلی زیاد داریم مثلا مهمترینش همین کپره دیگه یعنی پوشش. که اصلا کافر یعنی کسی که حق رو می پوشونه. رفته تو عربی کپ کلاه نمیدونم دونم گو تا دل تو بخون خیلی داریم یا اون چیزی مرد به سلطنت و حکومت بوده مثل گنج این مال بود مردم آده که نشدن یه یعنی کنز عربی همین گنجه حالا بعضی از این خیلی جالب مثلا گنجینه گنجینه فارسیه رفت و عربی شد چی؟ خزینه خزینه جمع بستش شد مخازن مخازن بعدا از زبان عربی رفت وارد اروپا شد مگیزن این ریشه گرفته شد این جای که اینا جمع میشه بعد مغازه از اون گرفته شد <تصفيق> به رفته کجا دور زده برگشته یعنی به یه نفر برگردی بگی مغز هر عربی برگرفته از گنج میگه نه همین بقولین تنبان تنبان میانه پا جامع, پا جامع. لباس پا درفت و هنچ پاجاما، انگلیسی ها گرفتن بردن در دوره که استعمار کرده بودن پیجاما فرانسوی گرفتن که شو پیجاما چه شو چه الان ما همون باز از فرانسوی گرفتیم پیجامه همین تو مونده بردن کل دنیا چرخوندنش پایجامه مثلا چه مریده اینکه مثلا پوشش چه مریده پوشش عمدتاً ایرانی است اینو بدونید بعد این عجیبه که امروز جمهور اسلامی تو بحث پوشش مونده یعنی <تصفيق> ja, اگر بفهمیم چه عقبه داریم اصلا باید بحث پوشش کل دنیا از اینجا باید نشأت بگیره این ترکیه یار نگاه کنم باید مشنگ طرفیم خدا شده کمتر چیزی وجود ده که به اندازه منو هرس بده وقتی عراجی فینا رو میبینم انقد غیر علمی انقد مزخرف برای چی برای اینکه که ترکیه یار ریشه ندارن توی چیه کلمه فرهنگ چی میگرد ندارن شاه ندارن نیست چون نداشتن یه ریختن قارت کردن حمله کردن خود مردم ترکیه همه یونانی یانونی تبارن همشون شون بود به زور الان نردوغان میخواد به تراشه دست می رو ابو بعد سینا خود ابو علی سینا به اینو خوش داده بوده ای ای بات شد. دست می اون یکی نمیدم دیوانن دیگرن از سرخوصا گرفته همه رو دارن میگندن دارن که سوئدی هم از ما نمیدونم خیار بذار بمونن جون مادر یا تو از زبان شناسی انقدر اراجیف میگن انقدر اراجیف میگن که اصلا خیلی از این حوزه جواب اینا رو نمیدن این شعن ما نیست برای اینکه وجود نداشتن دولت ملتی نبودن حقیقتن بخوان به اون افتخار کنن نه اینا هیچ وقت شهری نساختن شهر رو قارت کردن توی ایختن شهر رو صاحب شده شهری نداشتن کلماش هم ندارن اما در عوض مثلا تو عربی بندگون خود برف مرف نیدن دیگه میرن چی بودن سلج هم یخ هم برفه جواب داداش هم میرونه همش میفهمن یعنی چیه میگن تو قط قطب اسکیما 50 تا اسم دارم برای برف یخ <laughs> این یخی که مثل اول صبح باشه اینجوری دوناج لیز باشه اینجوری چه دروج باشه این مثلا نمیدونم یه خورد روش یخ زده باشه شیشه‌ای تور شده باشه یه, یه اسم بره برای اینکه درگیر بودن دیگه اینا جالب برای قارت چند تا اسم دارن <laughs> برای واقعا من برای قارت گیر هر چه مزه قارت حواسش بوده قارت شده تکی رفتیم دوشه منه جمعی رفتیم یه لحظه کنید امیر جمعش عمره در لغت هم اومدن عامر امکننده پادشاه فرمانروا خلیفه رئیس بزرگ قوم کسی از طرف پادشاه حکومت ولایت یا شهری بر عهده میگیره بالاترین درجه نظامی ال حکومتیست حکومتیست است است در روایت هم استفاده شده این کلمه من دو تا رو بر براتون بخونم میگه پیامبر علیه الصلاه و السلام دعاء به امیر را اون جنگ بود خود پیامبر شرکت نمیکرد کرد جنگ بود که چی شرکت می‌کرد با اون جانشینی که میذاش در جنگ امیر استفاده میداد دعاء به امیر ها فاجلسه او الى جنبه میخوندش می داداش میکرد به کنار من بشین تاییدیه بهش میداد و جلس اصحاب او بین یدی گروه هم میخواست کنار خودش قرار میده بقیرم پیش رومینشون یا آنگاه میفرموید به سوی دشمن حرکت کنید به نام خدا و در پناه خدا و در راه خدا و پیروی از رسول خدا پیمان نشکنید خیانت نورزید مبادا کشته ای رو مسلح کنید نبینم برید تیکه تیکه کنید بدنی رو امت خودش اتفاق افتاد برای نوی خودش درختان درختار مبادا قطع کنید الا به ناتار حالا تیر پرتاب میکردن مثلا دستور رو دارن و نخلستان رو این بحثش فرق میکنن نه میخواستن یه بزنن قط کنید درختارو مثلا یه آتیش درست کنن بزنید و میکنین با مرسوم درخت چیچی با جون اینسان آدم رو حساب نمیگردن در صورت ازار 400 سال بیشه همینه الانش هم 40-50 آزار نفر قطل آم کردن تو قضا 30 که در نیمده اون موقع این چه خ یا پایین برمی سنفان من امتی دو سنف هستن از امت من. ازا سلوها سلوحت امتی. اگه اینا درست شدن امت من درست میشه. و ازا فسدها فسده ده. اگه اینا خراب شدن امت آن خراب میشه. الامرا و الفقه ها. حاکمان و علمای دینی. حکومت میشه دقیقا معنی ریاست حکومت بود. یاد جریان جنگ سفین وقتی یاران حضرت در ماجرای حکمیت خیانت کردن حضرت فرمود لقد کن تو من بودم امس امیرن فسبح تو علیان مأمورا صبح امیر بودم کار به جای رسته الله مأمور شدم اینا دارم به من دستور میدم یعنی دقیقا معنی دستور دهنده است و دستور چیزیه که باید اجرا بشه قاعده قانونه حالا اینجا پهیمبر چی فرموده؟ من کنت انا نویوف علیون دقیقاً حکومت و دستور دادنشونه و دقیقاً در سقیفه همین بخش از امیران اون گرفتن نه این ها آمدن بگن علی از ما بیشتر نمیفهمه قبول داره من هم احمدی نتون و علی و ما افتاد بار افتاد بار چقدر این برمار لولا علی لحلکه همار لا فلانی علی نبود فلانی هلاک شده اینو میگفتن با این مشکل نداشتن امام باش سوال شهری جواب بده یا این نفر میگن نه من تو جنگ علی رو میتونم شکست بدم نه آقا اسد الله القالب من الان شما برداره اهل سنت بحث کردم گفت آ تو ر اسد الله القالب بودی چرا چه چه زدن همین رو مثلا سند مخالفت با شهادت عز الزهر و ماجرای بعد از صقیفه شما میارن یعنی قبول دارن که او اسد الله القالبه یک چیز امیران قبول نقبولشتم حاکم نیست، تمام پس این معصوم بخمی دار منتصب معصوم این عبارات دقیق استفاده شده ولیان امیر بود و قال و سبس فرمود فراز دیگه از دو هم. انا و علی من شجره واحده و سائر و من شجر نشته. اصلا این حدیث معروف حدیث شجره حدیث منزلت داریم برخودشی تو سرفست دیم تو جوامه حدیثیه تو اپنی منش انا وقاله و پس فرمود گفت انا و علی, و, من و علی من شجرت واحده ما از یه درختیم یه روتی یک ریشه و سایر و ناز من شجر پرقیه مردم از یه درختی اهل به چی؟ نه اونا ملحقات این درخت هم در شاخه و میوه و ایتو قصه پیامر هم میرن اینو خود اهل بیت هم من اعمم میفرمان خب این حقیقت چیه؟ نمیدونیم واقعا نمیدونیم بیت تو روایات و یه خورده دیگه تعقل و تدبر و تفکر و یه چیزای آیات قرآن چیزای مثلا یعنی خدا مثلا دنیا رو آفرید مثلا بگه آقا مثلا آ خبر بزرگ من اینو اون ملائکشون دعوایی شد و قل و نبع اون عظیم دعوا سر و او بود او بود او کسی است که نبع عظیم بود چی بوده که ملائک یختسمون خرکشی شده یغی کشی شده مخاصمیشو گرفت آقا ل فعل قرآنیه قرآن اون چه جوری شیطون چی دیده مخالفت کرده چی بهش میرسید حالا مثلا کره کوره زمین هم دست اینا چه ناراحتی تو چی میفهمید اینا حد سو گمان خب بعدش همین بیهیم مثلا هشت هست دن نگم بعد بیشم برشتش خال چی در پیش هست کامل درست نمیتونی در یه روایتی دیگه داریم انا و علی من شجرتن و ناس من اشجارن شتا مردم از روی شد از ابن شهرهاشو سعلبی فضل ابن شازن تو امالی و, و غیر روایته از جابر ابن عبدالله نقوم میکنن که میگه پیامبر شنیدم که خطاب به علی میگفت الناس من شجرن شتا مردم از یه درخت دیگه یعنی ریشه دیگه یعنی. و انا و انتا من شجره وان ثم میگه سپس این آیه رو قرائت کرد حالا خداوکلی صد سال این آیه رو میذاشتن جلو من و شما میفتیم آخه خدا چیز گرفته دیگه برناب... چیزی چیز میام والا خدا خود الان دیگه خود کو با کشاورزی هم صحبت بکنه تو قران دیگه آ آه... اون کشاورز جناتن منع انابن انگور و تاکستان و و ذر و نخیل و بالا نخلتونی و سنوان و غیر و سنوان ی قاب ما ان واحد دو نقطه یعنی بن نبی و به کیا علی یعنی شال مثلا با یه آب مشترک اینا چیز می شدن و نمیشم مثلا با قنات آب بدیم چشم از چشمه محل مثلا آب گرفتیم دو صد آب خریدیم از دو کیلومتری جوب کنیم داره میاد مثلا بعد دقت میخوام ملاحظه راهی قرآن میگم این قصه ای که من و تو فرق داریم با بقیه این آیه شینه آلیا پیغمبر میفهمم تمام افراد مردمان از درخت های گوناگونی هستن همین الان بگی به درخت های گوناگونی و من و توی علی از درخت واحدی هستیم و پس از آن فرمود با از درختان انگور و کشت‌های و درختان خورما که شاخه‌هایش از یک بن رویدن و از یک بن نرویدن سنوان و غیر سنوان یعنی شاخاش از یک بن یک ریشه رویدن یا نرویده اند اینو چرا باید تذکر بده قرآن؟ و من همه درختها همین جوری هن. درخت پیون میزنن درخت همین نمیزنن بعض از این درختان چون نحوه تکثیرشون جوری که انسان باید مداخله کنه اصلا تو بحث انسان شناسی میگن مثلا این نو درخت فلان منطقه مثلا وجود داره این یعنی اینجا آدم بوده این مردم تایف میادن کلاس میزشتن برای چیز برای عربا برای مسلمان های مکه مدینه که آقا ما موز داریم شما ندارید این ظاهرن از قدیم مسئله بوده این قصه موز اگه میرد بهش یعنی من موز داشتم بردم عذیت میکردن این آره مالا مثلا شما ندارید ما موز داریم اینا؟ آقای قرآن اومد که نه نه تستو بهش خوبش هست عربیش یعنی موز یعنی چون شبیه انگوشت هایی یه دست کنار همدیگه بهش میگفتن بنان انگوشت لفظ انگلیسی هم هم ده شده همه بنان یعنی انگوشت ها منم خب بگم این نشون میداده که موزم جزء اون درختایی که انسان در تکثیرش نقش داره. اونجا بوده یعنی آدم میرفته میکاشته کاراشو بگیری میکرده حالا چه جوریه من منم نمیدونم اما انسان روش نقش داره. اینجا میفرماد بله خب این چرا داری توضیح میدی؟ بعد قرآنی که مثلا یوه میمید آا راست میگی ما یونس درخت ندریم اینجوری هست از یه بن رویدن یا نرویدن و همه آنها با آب واحدی آبیاری میشوند. جو مثلا کردم آبیاری نشم مثلا میداد قنات بریم چی میشه مثلا؟ ظاهر آیه معنی داره ها میگه ببین من یه آب دارم به اینا میدم یه خاک دارم میدم این بت خرما میده اون بت نمیدونم چی چی میده ببین چه نعمت هایی برات داره این ظاهر آیه اما وقتی تو باطن میری چی دیگه ای رو داره میگه الا مثلا به اون خورمه ها چشمه میدادیم به اون درخ موزه مثلا نجیجه میزنن اتفاق خاصی میفتاد نه خیلی خیلی نه خیلی بله میگه به واسطه پیامبر و تو آبیاری میشند حسکانی از علمای اهل سنت کتاب شواهد و تنزیزه همین آیه چار سور رد و فل ارثق بترع متجاربیات و جنات من عناو و زرع من نخیل و نخیل سنوان و غیر و سنوان. بله که به نقل از جابر بن عبدالله انسانی میگه: پیامبر خدا خطاب به علی و فی علی مردم از درختان مختلف هستن ما تو از یک درخت هستیم. و سپس این را تلاوت فرمود. این یه سند اهل الصناد بر تو همین دنیای از معرفت و شهوده یعنی چی؟ چی؟ مقام ولایتی که پیامبر و امیر المومنین داشتن مشخص میشه و کسی امیر المومنین کنار کیو گذاشته کنار؟ ببین اهلوی تو جدا اسمش نمیارن. امیر خیلی وقتها به خاطر اینکه نام پیانبر آورده شده کافیه یعنی جالبا تو همین سلبات این میگه اللهم الله علیه محمد و <تصفيق> آل محمد صلوات و الله آل محمد آل محمد آل محمد این پس پیانبر که میدونیم آل پیانبر هم میدونیم یا مولیش اهل بیت حضر زهر آل پیانبر اعمم که فرزندان حضر زهر بازم میشن آل پیانبر نوادگاهان پیانبر بسه علیش کجاست علی در خود محمد. نفسش و من الناس و بعضی از مردم منش نفس و ابتغاء جالب این آیه بر این که در ظاهر این طوری که این آیه در مورد و من الناس منظور کیه امیرالمومنین دیگه جانش جانشو در طبق اخلاص گذاش برای خدا عرضه کرد برای چی ابتقاء مرزات الله حالا که نگاه کنی میبینی عجب این آیه ما خ... در پیامبره یعنی این آزمون آزمون پیغمبر بوده که بهش گفتن علی جات بخوابه نفسو اینجا نه خودش خودش یعنی امیرالمومنین نه ند... اگه یعنی قرآن معجزه همینه در آنه باید دو دو بزرگوار رو داره میفرماد و من الناس یعنی امیرالمومنین نفس و جانش در طبق اخلاص باشه و منن ناس پیامبر نفس و علی را بذاشت در طبقه خلاص به من و شما بگن بچت برا تشویی میخواد فدات بشه سختره یا برو فدای بچت شو بچت میخواد فدات چه سختره شما هران چه در دیدید ببین پیامبر چی کشیده امیر که که اقدام شهادت طلبانه دار انجام میده جانش در شف دست گرفته همه جام هم سال باز پیش میاد که آیا میدانم کاری نخواهند کرد یا نمیدانم یا نمیخواهم بدانم برای اینکه خوب بندگی کنم که عرض من اینه <تصفح> احل بین بخواهند میدانند نخزانه دارای غیبنین بغل صندوقش است باز کنه میتونه ببینه اما دوست نداره چرا؟ خواد خوشگل بندگی کنه. امیرالمومنین که داره میخواد جانش رو در راه دین خدا بده. شک نکن. شاگردای این کلاس فرزند برومندش حضرت عباس علیه السلام والله ان قطعت و یمین النعوم یبدنت. دست راست هم خواهی چی که هم بکنید؟ ما؟ چی؟ من از دینم هم حمایت میکنم. کار امیر از این جهت برای ما مفهومه که تفاقه. کار بزرگی ها اما اون طرف ماجرا. هست. پیامبر چی؟ این نفس میشه امیر المومن. مستدرکون علا صحیحین مستدرک حاکم نشابوری که میده مستدرک چیزی رو میاره یعنی باید یا بخاری و یا مسلم میابردن تو تو این مدل رجال و قبول داری باید این رو میابردی بر همین اومدی کتابی نشون صحیح علا صحیحین این جل دو صفیه 241 و ها هازا حدیث حدیثون صحیح والاسمات بلا میوخرجان میگن سندش صحیحه اون دو نفر نایبردنش کتابشونو اون بادمی آوردن یا قوله قول پیامبر یه پیامبر فرمود ان الله خلق الانبیا من شجرن شتا خدا انبیا رو از یه درخت دیگه آفرید و خلق و علی من شجر واحده می شجره واحده من علی درخت آفرید معنا اصلها من و علیون فرعها علی تنشه شاخش حسن حسن و الحسن و الحسین ثمارها حسنین میوه و اشیاء و اوراقها مشا و اوراق و ها شاینم برگای درخت جایگاه شیعه اهل بیت درست حسابی کی شیعه اهل تو این شبکه هست تو این شبکه ولایت تعریف میشه قرآن اینو به یه درختش بکنه حالا میفهمی چرا از اول قرآن همون خلقت قصه سجیه شجره و درخت همه دعوه ها لا فکر کن از حضرت آدم رو تو سراخ درخت سی باونه گلابی ها رو آره بستی برای گاز زده یعنی شده آرم اپلو یعنی ما تست کردیم دانشو بعد خدام استغفر الله مثلا خسیص بوده علمو نمیداده بعد قایم کرده بعد گفتم اون دیگه تورات چی نوشته نه قرآن میگه بابا خدا خودش علم دی و علم الانسان ما علم یاالا خیلی فقط دنیا دیگه دنیای دیگه‌ای هستن تورات یه چیزای دراز میز کنارو قصه ص شجر است شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه و لا غربیه. درخت زیتونه نه شرقی نه غربیه چیه؟ بری تو فاز درخت یعنی چی واقعا؟ نه منظور درخت زیتونه چین نبوده شرقی؟ زیتونه مثلا آمریکام نبوده غربیه. همین مثلا مدی مدیترانه مثلا، وسط مثلا تو خوبه. آره. پس هر کس به شاخه ای از شاخه های آن دست اندازد نجات میوبره و هر کس به لغزت میفتد و اگر آبدی و اگر آبدی هزار و لو ان آبدن عبدالله الف آمن ثم الف آمن ثم الف آمن, ثم الف آمن هزار سال باید ات کنه هزار ساله یا هزار ساله یا ثم لم ید رک محبتنا اهل الباید اکبه الله علا من خرید با سراخ دماغاش کلی میکنه دیشت آتیشی این سری اینو سر محبت و مودت کلی بحث کرد یعنی مومن باید این باشه که این قلب از این دستور بگیره اگه دیدید محبت دارید به غیر خدا و به مسائل غیر الهی سریب نشانه بیماری قلب سری نیاز به رسیدگی داره میدونیم یه نفر حتی که به یه سری از مقدسات بی‌جوری مجبور می‌شم آدم بشینم اشکال نداره من خیلی از این سیاستو سی میرم می‌شینم باهاشون صحبت می‌کنم احترامم بهشون می‌ذارم محترمانه از خدا به حضرت موسی راه و قول الله قولا لا و فرعون مخاطب بذارید محترم احترام به بیز می‌ذارم کار خوب بکنن تا دیروز علی خود طرف 20 تا سخنرانی دارما اصلا یه جوری رفتن گفتن بند خدا الان منو می‌بینه یاد اون تیک توک کلیپام و سخنرانیام اما محترمون یه کار خوب کرده رفتن ازش تشکر کردن بنده خداست؟ محترم برای من مبنای این درگیری منم شخصی نیست به خدا اصلا اینقدر با ایشون مثلا احترام با عزیز عزیزی احترام گذاشتم جلسه نیم ساعت ما چلقی شد چهار ساعت آقا نهارم بمون تو رو خدا کلون عجب من نمیدستم شما اینجای شما رو فقط از, از, از, از این کلیبات رو میشناختم میترسن فکر کنم من برم میزنم اشون <تصح> سنما پدر پدرکشتی ندارم که مگر خودتون میگم نکته ای تازا کورم میدمو قبلش هم خصوصی میگم تا جه بتونه نمیکنه چه چیکار کنم این آیه را تلاوت فرمود الا اسالكم عليه اجرا الا المبدته في الغربه بگو برای آن از شما موذی میخوام مگر موادت و دوستی کردن با خیشان فتوبال عبدن خوش به حال اون بندهی تمسکه به اصلها و اکلمن فرعه ها تمسو کرد به اصل این درخت یعنی به ولایتش و میوه این ولایت رو خورد میوه این ولایت رو تو این شجره تو سیاسی هم هم هست لانه که دقیقه کردم برجام هم درخت داره گلابی داره علم ترکی فضاربالله مثلا آیا ندیدی خدا چی مثال زد دیوانه نری تو مثال بمونی یعنی چی؟ یعنی شجابه روی که خب یالش کو دومی شیره خود دیوانن بعضی ها دیگه خود بعضی ها مثال میگه دارم مثال میزنم روانی نیست دو قرآنم نری تو مثال بمونی ذلک امسال نظره با حال ناس میاد میصابه برای شما آدم مثلا که یه شدنیه مثال بده چیکار میکنه یا مفهوم می‌کنه مطلبو بعید دیگه نمیدونی یا خاص شدنیه الان مثلا میگم مثلا زور میکنه مردم کف دستشون رو می‌بینن فلان به حضرت عباس صد تا قسم واسه حقیقتاً همین گوشیه نه اما این گوشی که اومد گفتیم آ شدنیه آه. میتونه این یکی از مصادیقش باشه شاید هم مثلا مش انگشت دستشون میگن نورا لیزر رو هوا رو هوا اینجا نمیزارم چون میدونم نمیدونم مثلا کلمت طیبه کشه جرتن طیبه ما کلمه طیبه رو به درخت طیبه مثال زدیم کلمه یعنی حرف حرف درخت خودو چی میگیم چیچون انتظار داریم به را راست چیم <تصفح> نه قرآن درست بخونیم یهوید در مورد حضرت عیسی علیه السلام فرمود و عیسی کلمه بود. آ معادله من چند معادله چند مجهوله بزرار حل میشه. یعنی آدم کلمه است. پس کلمات الله کیان. و ازب طلا ابراهیم رب به کلمات و تلقا آدم رب به کلمات هم آدم با اون آزمون شده هم ابراهیم با اون کلمات لازم لازمه این کلمه کلمه ها این آدم ها این ها کیه هم قرآن اص... اصله ها ثابت و فرقه ها حالا واقعا یه درختی میخوادیم مثلا زمین نه. شاخاش رفتون تو آسمان چه نه ریشهش اصله ریشش، استوار و پابرجه است. امکان نابودی وجود نداره اصلا اصل اونه جز اون وجود نداره بقیه وهمه خیاله توی درخت خشکی داری میدید تباهمتو زمستون تمام بشه در عرض چند روز یه هویی میبینید جبونه زد تمام توجهاتو جلو خودش میکنه صبر کنید و کذالکن نشوب میگن طبیعت رو ببینید بی جان یهوی دم بهار دیگه چی میشه آ یه سالی بارون خوب اومد این قوم تا تا قم میرفتی براهوت و همه نمک و فلان آقا پر گل لاله بود قرمز استن اینجا کجاست؟ آن ظهور هم همینجوریه بذار اون ربی برای چی بحضت میگن ربی هلان ها بسید این بیاد شکوفا بشه همه چی اون براهود که تا قبل براهود بوده ببینی که کف کنی <تصفيق> شاخ در بیاری بگی من این تو براهود این چیز رو بیارد همینه ابراهیم 24 علیه است سور ابراهیم هایی 24 اصلا سور ابراهیم هایی مسئله هست شا. نکته است خود عزت ابراهیم شجره مبارکه اون،, اون, اون بخشی از اون شجره که به برکت دادین قرار بود کسیر بشی تو تورات نسل تو را کثیر خواهم کرد چندجا گفتن اون کجا اتفاق افتاد ان ناتاینا کالکوفه این همون کوثری بود که گفته بود بله پیامبر امیر پیامبر فرزندشون حضرت زهرا که خود باز به دنیا آمدن ایشون اون ماجرای چلهی که پیامبر میگیره اون سیبی که میگیره مثلا قصه سیب و این داستانه رو داره یه چی دیگه است؟ شما نمیدونید چی پیامبر در وجود نازنین از زهرا امیر المومنین اون یه شخصه با هم ازدواز میکنن دوباره برای این در روایت میفرماد میگه که پیامبر ریشه علی تنه یا جور هم گفتن شاخه مثلا گفتن و از زهر رو میفرم و باروری آن درخت است غاها در احادیث زیادی که من نمیخونم براتون وقتش نیست شجره علم شجره نبوت شجره توبا شجره اسمت شجره ندا شجره تقوا، شجره اسفیا یه بدیه یه بد درخت نیست امام صادق در مورد درخت توبا میفرماد شجرتون فی الجنه اصلها فی دار علی ابن عبی طالب <تصفح> یه اسلافیت تو خونه علی والله سمومن الا وفیدار قصر النخصان مؤمنین نیست مگه اینکه ای از اون درخت بخورن از اون درختون خونش بیاد یعنی باید واسم بشی به اون بیت ببین من بش... مثلا اینجا دارم یا آقا کسی آب میخواد یه, یه لیوانم به من بده درسته واقعا لیوان شیشه‌ای میخورید یه لیوانم به شما بدم من خودم داشتم لیوان شیشه‌ای مثلا میخوردم یه لیوان پلاستیکی می‌خوام منظور از ظرف چیه؟ مظروفه. اون که توشه. پنجره شیکست. یعنی آهن شکست؟ به شیشه داری میگی؟ درست شد؟ کارت آبر چی که پلاستیکه، توش مهمه. اینا نهایت داشته باشید. ما همینجا همین جام این قصه ظرف و مظروفو داریم. بیت خونه دیواره ما اهل خونه برای هم بیت تو خانه قرآن یعنی چی؟ خانواده خانواده به من یه اسرم تو قرآن نداریم اسره استفاده نشد من نایدام نقاط کردید؟ پس میگه خ... مسئله خانواده و مسئله کلید بریشه یه کجاست؟ میده هم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اجل ديزه اهلرا یعنی ميگه يعني اهل خونه ان اوهينا لبيوت لبيتل عنكبوت بدترین خونه خونه عنكبوت ظاهره آيه واقعا سوسترينه همچه انگشت بزنم تا رنک پاره میشه حالا يي نفهميد مرغ شي اغا با تار عنكبوت الان تیشرت زده گلوله می بافن می بافن این, این به معنی نيستيش که این خونه الان سوسته یه انگوش فاتش خونده یه جارو برقی کنجه <تصفيق> فاتش خونده میشه این ظاهر آه. اما باطن میدونی چیه؟ ان نه اوهنال بیوت لبه لب. ای این خانواده انکبود سوس ترین خانواده است میرینی که چگار را میکنن انکبود تو یک پدر سوختگی بین خانواده انکبود حاکمه که نزیرشو ندیدید تو جم نیست مثلا برای اینکه مخ ماده هر رو بزنه بعد برایش هدیه ببره یه کله موچهی یه تیکه یه چیز بعد بکنه میدونی نرمینه چکا میکنه یه دین سنگیزه برمیداره اونو تار می‌پیچه برای اینکه زنه رو خرش کنه برای جوفگیری اون اونم میدونه سری میخواد بازش بکنه پاشو میندازه غلاب میکنه خدافز کارت دیگه تمومه چی میشه جفتگیری که تموم شد زن رو میخوره بچه هاشون بزرگ میشن نهنش رو میخورن چه خانواده ای என்ன او هنل بوت این گونه های مختلف انگشه اینا نه؟ ببین اون زمان شما بیایید یه مسئله حشرش ناسی رو انجوری بید یعنی <تصوصیح> آره. جناب انکه بود و خانومشون اینا هم منزوده. بله ظاهر همون صورت رو همون هست برای همین اجازه دیگه قرآن در آن واحد داره بیس تا حرف همزمان میزنه برید دکمه شیفتو رو بگیری هش نگاه کنیم درسته عادی نگاه درسته شست تا هشت و دیگه هم داره ما هنو نفهمیدیم چه ما دقیقا پس اینم بگم تموم با. همین مفهوم یک پارچگی خونه و خونواده و یک شجره و نور و برکتی که بیجه در جای جای قرآن داره میبینیم پس یه درختی اصلها ثابت بعد این درخت از جنس نوره تو چجره آیه نور چی میگید شما؟ الله ها نور نورستن ما بات بلرد مثلا نور کمشگاه خدا نور آسمان و زمین با راست چون بحث کردیم دیگه نمیگم باز از اون طرف یادم میفته یه جوونی اولین بار اینو میگم خدا اینو باز کنم نکنم نمیخوام میگم آقا بیل ختون بگرد پیدا کنید دیگه چیکار کنم چین خود این ب... از خودم بپرسم که از بهترین سخنرانی من توی که از حیات گفتم همین تفسیر همین آیه بود از نظر خودم کمشکات فیها مصباح ال مصباح فی زجاجه این یه چراغ داره این آره این در این از زجاجه که انه ها که این چراغ مثل ستاره درخشان اصلا میفهمیدی یعنی چی خدا و اکیلی چی داره میگه خدا چه عادی بخوایی ببینین یعنی چی خود یه اوقت ها شجرت مبارکه این چراقه میدونه از کجا تیش میگیره از درخت مبارک نور از اون میگیره درخت مبارکه چیه؟ زیتونه لا شرقیه و لا غربی تازش نه شرقی نه غربی لا بود جمهوری اسلام یکاد و زیتهای و زید روغنش نزدیک نور بده روغنش جانمایی نور میده ولو لم تمسس و نار تازه ببین این نور از آتیش نیست کلن قدیم ما برق اختراک کردیم هر آتشی هر نور یعنی آتیش معنی دیگه داشته نه یه سال حضرت موسا گیر کرده بود به نخواهد زنش میخواست وزه هم بکنه گل و و, و بیو گیر کرده بود دید از این زنه یخ میزن الان دید از دور یه آتیشیه آتش هر کجا دید؟ دید یه نوریه وقتی نوره یعنی چی؟ یعنی قطعا آتیشه برم گرما بیارم با خودم نگه برم نور بیارم این زمان نوره رو با چی میخوای بیریو تو که شاخه رفتی چی آتیش کجا بود بگید توی درخت بازم داره اونجا باورش صحبت صورت گرفت فخلا علای جف در درار سرتو انداختی داری میای انک بالوادل مقدسل تو تو یه وادم مقدس تو هستی بیا حالاچ خب چی دستت موسا <تصفيق> در خیلی جو اسامه چیکار کار میکنی باش من با این برگ میریزم ات رخ احوش رو به آقا نمی این گوس ها میچرونم تکیه این بخچه ها میبنم نمسرش میزن رو مثلاً مثلا مثلا نمیدونه خدا اینا رو میبینی هر جو به هر کسی این شجره وسط ها این شجره وسط هرچی به این شجره و تأکید ولو لمتمس از اون نار نگی این نوره با آتیشه ها اصلا صحبت هم صحبت آتش نیست نوران الانور نور نور بلا سر نور همین پشت سر نور نور پوق نور همینجوری میاد یهد الله لنور ای منگشا خدا با همین نورش هلکی بخواد ادایت میکنه. هدایت به باسطه همین نوره که از این شجره است نور شجره خونه نه اصله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب الحکمه و آتینا و ملک نظیم اینا میگنه درخت دانش درخت حکمت the tree of درخت جاودانگی و زندگی همین جهودها الان دارم میگن کل دنیا داره اتفاقاتش حول همین درخت و شجره های این ها نمیچه این جای جای قرآن اینا رو میبینید بعد اینجا باز میفرماد برای گیجا خدا دیگه بالاخره برای ما داره بفهمیم دیگه و یزربالله الامثاله لناس رو مثال میزنم نری گیر کنید تو درخت میرخ بمونید و لاب کلش این علیم خبه میدونیم می چیه چون برای شما اینجوری مثال بزنم دیگه بلا فاصله آیه بعد نوره رو توضیح دادن ما الان دونباریم برای این درخت رو کجا گیر بیاریم درخت نیست مثال دارم میزن نوره رو کجا گیر بیاریم سی و پنج خوندی؟ بعد خود قرآن نوره یه سوره داره نور یه آیه داره سی و پنج نور نور این دیگه نورن الان نور رو نلا نور کجا پیداش کنیم؟ فی بیوتن این رو توی خونه های خونه های خانواده های بیت، فی بیوتن ازن الله انترفه و یوس کره فی اسم خدا ازن داد اونجا اسم خدا بره بالا ازن داده شدیم ذکر بره بالا یاد خدا باش فی ها في اسم يصب لهو فيه القلب القدوه صبح و شب اونجا یاد خدا سکل خداست همه چیز خداست تو اون تو اون نسل تو اون باز این نسل و ذریه چقدر رو زوریه بحث کردیم راز ذریه اون 19 سال پیش 12 سال پیش ذریه من حملنا ما اصلا خدا با نو حرف نمیزنه یا کسایی که تو صلب نوحیت دارن با شما حرف میزنم میگه من فقط نوح که نجات ندادم جماعتی که از او قرار بود بدن من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا با شما ذریه دارم حرف میزنم با شما آل دارم حرف میزنم این رفت در خونه هایی که صبح و شب نور از اونجا میبره یاد خداس حکمت ذکر، اسم خداس آیه بدیش آدمایی از این خونه آمدن بیرون مردانی از این خونه آمدن رجالن لا تلهی هم و لا بعی آدم اومدن که دیگه پول و پله و خرید و فروش و اینا انذکر الله از یاد خدا ذره نمیتونین آن رو غافل کنه و اقام سلات و ایتا از زکات از برپاداشتن نماز و بلایت صلات باز میبینی اینو سرفسل رو داری خودت بیت از زکات و از مال بخشیدن و دقیقا تجارت نقطه مقابله یا خافون همینا اینجا همه رو گفتم یه های انا یه سکته بده بدم یخافون یومن تتقلب و فیه القلوب و لبسار همینای که گفتم چقدر ویژن این افراد یه میدونستید میترسن از اون روزی که شما و قلب ها دیگرگون میشه؟ نینیشی؟ قیامت میشه به فرمایی شما چرا نمی امکن امکان نل آلین بالاترید، بالاتر دیگه خود خداست خداییت؟ آقا یعنی چی ترسند پس این همه؟ و همینو پناه میبریم از چه؟ و چه کارش؟ شو؟ اینجا چیوشان؟ لیت لیت زیهم الله احسان ما عمل و بیزیدهم من فضل، بلکه او یارزومن یشاب غیر حساب. خداوند که اعمال مردان و خدا را جبران کرده و پاداش کامل به آنها میدهد. اون درخت مأمور شد باشد، شاخه داشته باشد و تهش به چی برسه؟ به میوه و به درخت بودن از چی میشنسی؟ از همین شخ و برگش آه. به این سبز بودنش اصلا درختی کاجمینی برای چی میکارن؟ به خاطر اینکه تو زمستونم سبزه این شمشاده رو برای همین میکارن که تو زمستونم شم، زم، زمستان شاده، سالمه درسته؟ قرار بودی ثمره ای که برگشت هیچ این بشریت به چه جایی برسه والله رزق و من یشا به غیر حساب پس خدا کمکاسی اعمال مردان خدا جبران کرد پاداش کامل میده لیتزیهوم الله اصلا پاداش رو بیشتر از عمل بدید یاد بگیرید یه کسی کاری کرد براتون بیشتر پاداش بدید و یزید همون منفضله هموشه وفو بلکر یه خورده اضافه تر بزن با تاکسیه آخرش یه چیز اضافه تر بده با کارگری چکوچونت بزن بگو بدون نهاره مثلا اما ناهاره رو بدی و یه چیز اضافه تر. اگر از دنیا از سود دنیا بگذرید به سود بی حساب آخرت مید. لا تلحیه امتجارتون میرسه به الله و به غیر حساب بکشنی از این به غیب برسی یؤمنون بالغیب و یقیمونست همش همین حالا خوف قیامت این آیات رو شنیدید جز آیاتی که راوی روایت خلیفه اوله فقط قشنگی کار نبقا. کار خدا رو خونه ها کوکیان پرسید پر با فهمت خونه انبیا این خونه چی آه. خونه امیرامان از زهرار نشند اما این بالاترین اون خونه هاست باید. پشت همین داره همین خونه رفتن با آتیش نخوندید که آتیش کاری نداره با اینا بلا بلا تمساس و نار بر حضرت زهرا همه چیز نقل شده جو نه حضرت ابراهیم وسط آتیش انداختنی شجره اینا شجرت این مبارکه امام صادق وسط آتیش را میرفت خونه شد منصور که آتیش زد منصور دوانگی وسط آتیش را میرفت ان ابراهیم. پسر ابراهیمم نب نه عراق من پسر ریشه های زمین اساعیلم انتظار دارید ترسیدن خودشون. نه او برگشم برگی باشه نمی سوزن. هارون هاون مکیفهم ترون روشن او بپتوتان. سوخت؟ و بالعکس نه خودشون که شیعیانشون آدم از آتیش نجات میدن شیعیانشون دنیا میریزن به هم دنیا به میریزن شیعه باشن یه <også> روزم بعد بذارم شیعه در آخر زمان تو قرآن روایت اونجایی که شیعه چپ میکنن و بگم روایاتی داریم، روایاتی داریم که نه چی میشه قاطم میکنه. این آیات پس چی؟ خود راویش هباباکده او, او نقر خدا میخواده میگه این همین خونه هست. این مردا ازش میان بیرون از نور شروع که الله و نور و سماهاته آمد روی زمین توی خونه قصه نور قصه شجره باز همینه گفت چی؟ گفت اون دار علیه اون خونه علیه همینو میگه چی؟ میگه از قیامت میترسن میگه صبح شب ذکر و دعا سا دعای کومل مال اینا سا اما میگه ما هر دفعه بچه بودیم نگاه میکردیم شب و نصف شبیدامش شب میدیم مادرمون در... یا در رکوع یا در سجود بعد ما فقط کافی چاب دل ازین بریم برگردیم دیگه تمومه میگیم چند وقتی ملت خک و, و خرج و شغال و این چیزا نمیبینیم چی شده اصلا چرا نمیبینیم هاج ان این انگار قبلا می دیده نمیبینیم چند دقت کنیم میکم زور بزنیم دو تا زگ... دو تا تصویر دیگه بریم الان یورو رو دیگه میبینیم نمازایی که در میان قضا غذا... بعد ما نمیفهمیم این یعنی چی چیو داریم از دست میدیم دارو خدمت مصدق رسیت گفت آقا ما یه سفری می‌خوایم بریم مثلا چه تجارتی اینو خب به خیرت نیست صلاح نیست فلان فلان شدراف رافتو خوبم سود کرد ما گفت آقا چجوریه والا ما رفتیم مثلا مس دفعه قبل مثلا دو بارو سود کریم. از طرف هم فلان منزلگاه نمصد قضا شد یا نه آره اون با نمیارزید دید آیا چی بود؟ تجارت بای اون طرف چی بود؟ اقامه سلات ایتای مثال مثالو ببین یعنی مومن مبناش اونه مبناش اونه که من نماز چجوری بخوابم نماز صبح غذا چجوری سفر کنم اول نمازم رو بخونم تو این شهر برستم میخوام نمازم رو بخونم اون برگی اون شیه برگ، اون درخت منظوری نیست. محبیم ما دوستشون داریم خوبه خیلی عرضش باریم شالا شیعه باشین یه آیه دیگه بسیار خواهی بگم این آیات آیاتی که ردخور نداره در مورد احلویت سوره چیزه هست حلعت ها که دیگه اصلا بعید میدونم کسی گفته باشه مال احلویت نیست <تصفيق> انقدر بازه ببین چی میفرمو یوفونه به نظر وفا کردن به نظرش امام حسن موسیم تب کرده بودن. امیرمون از زهران نظر کردن که سه روز روزه بگیرن سه روزه این بعضی اصلا مثلا بچه‌هاشون تبشون پایین نمیاد همین رو انجام میدن الان حالا مرسومه سه روز نازم کردن روزه بگیرن تب بچه‌شون قدشه هر روزم میکنن شیعیان به این سیره عمل میکنن سه روز روزه بگیرن چه اتفاق افتاد میسین اما یتیمن و یطعمون الطعام بهی، حبہی علی مسکینم هم و یتیمن برسی با را بایی قبلش چرا نمیخونه نه جون من چرا درد اون چیه درد درای قبلش یوفونه به نظر به نظرشون وفاهم و یخافونه یومن کانه شررو مستتی رو میترسن از اون روزی که شرش سایه انداخته بود هم دعای معارجب چی میگه؟ چی میگفتی؟ به خیر که میرسیدی میگه جمیع علم. به شر که رسیدی چی گفتی؟ جمیع شر دنیا و جمیع شر الاخره جمیعنش هست شد شر الاخر ما نمیدونیم چی در پیش آقا یعنی چی از این بر این نور باشی بعد اصلا با نار در ارتباط نیست این ترس ناشه از چیه سراحت قرآنه میخوای ماله بکشیم آیار نبینیم یه گزارش خداست میخوام بگم قیامت میترسم پس اون دعای کومل ادا نیست گریه های حقیقی امیر المومن نست ون گونه مبارچی که از روی اسب زمین افتاده تو اون حالت داره یارب رب یا رب یا رب داره میگه میگه خدای پسندیدی خدای خوب بود خدا راضیم من به رضای تو ها اون زدجه هایی که تو روز عرفه زده شده بیرید بخونی دعای عرفه ما حسین می خونیم یه بار دیگه. بچه چرا ما این گریه رو نداریم اتصال و این شجره از همین طریقه امام سجاد علیه السلام وقت نماز میرسید نماز مراج مومنه وقت نماز میرسید رنگ از صورت و مبارک بود از اون میفهمیدن که یه دیگه وقت نمازه از استرسی که از اون ازترابی که از اون آه بچه ما اینجوری نشونست دیگه؟ آه سخت نگیر چه سخت نگیرم؟ ماله بکشیم قران. آره من کارم اینه من میگم اینه خودم هم بر خودم هم سخته بینه اگه الانه ما ما خودم که بارها گفتم منیت توش در نمیاده من خودم بدترین بنده خدا رو زمین میدونم رو از ها حجت هایی که خدا به امثال ما ها تموم کرده به کمتر کسی از بنده هاشت هست حاضر نمون زدگان کار ندارم آدم معمولی هایی مثل ما کمتر کسی تموم کرد هرجی حجت بیشتر تموم کنه پوستت رو سختر میکنه برید در مورد حواریون ایسا میگیم از آسمون برای شما غذا فرستادم اما پوستی ازتون از بکنم که اون سرش پیدا جوری عذابتون کنم که احد و ناسی رو عذاب نکردم از آسمون یا غذا فرستادم تورید چه شدبه؟ چی میگیم ما؟ چی داریم میکنیم؟ حضرت علی علیه السلام میفرماد وله ابن عبی طالب ابن عبی طالب برای علی عبی طالب آنسو بالموت من الطفل به امه به خدا قسم اون سی که به عبو طالب مرگ دارد بیش از اون است که طفل به پستان مادرش دارد پس این چی انسان ها در موضع مرگ سه گروه میشه ناقصا ها متوسط ناقصا کیان درلی وبشتون از ملکی که به حکم فطرت خودش و به حکم یعنی غریزه به بقا و جاودانگی علاقمنده همه چی بقایه بر چون یه مرغ برای اینکه موقع تخم میذاره بهش نزدیک بشی به سگ حمله میکنه بقاش از فنا و زوال متنفره این دنیا رو عالم حیات میدونه تموم شد بهش عشق نمیبرزه آلم دیگه نمیدونه هست نیست نفرت دور ازش از مرگ میترسی چه جالب همین اخیران اتفاقات افتاد تو رسانه که یاد مرگ واکنش های مختلفی رو داشت کفنی <تصفح> <كفانی> آوردن نه واکنش <تصفح> مختلفی بود حالا به دلیل این وحشت خود قرآن میگه میگه این نحیه الا حیات دنیا نموت و نحیا و ما نحن به مبوسیم جز این زندگانی دنیای ما چیزی نیست میمیریم و زندگی میکنیم و دیگر برانگیخته برنگ... نخواهیم زندگی میکنیم بعدش میمیریم دیگر نخواهیم شد تموم تر تصورینه حالا یه موقعی می آقا آخره وجود داره به خیلی از ما میگه آره اما آره همونه یقین اینه اینا دارم میبینمش اینا رو دارم میبینم فعلا من چی, چی حالا برای همین دقت کنید حتی اتا کلی یقین توی روایات ما تو زیارتنامه خونه یعنی چی یعنی تا روزی که مرگ شما یا شهادتتون فناغم میشه یعنی اون موقع قطعیه دیگه برات مگر نه توی فعال و دیگه حالا خیلی از ما مثلا این سدلا میمیگه اومدیم و حالا اون دنیا نبود حالا اگه بود مثلا داریم میگه حالا ضررم نکردیم مثل آدم زندهی کردیم شر... دفع ش... خطر احتمالی شرط عقله اگه اومدیم و جنن بود خب بهتره حالا ضررم نکن خوش مثل آدم میخوام زندهیم یه گوشت خوب نمیخوریم نیا حالا این همین چیزه دیگه خورد می یعنی هزینه فایده ای تاش این داریم. متوسط ها چجریه؟ قفلت از آخرت و توجه امور دنیای کوشش بر آبادانی اینجا. بر دنبال اینم؟ بر از مرگ می ترس. یه مردی پیش اومد و گفت آه چرا ما از مرگ راحت داریم عابزار رو به اینکه شما دنیا رو آباد کردید و آخرت رو خراب. پس طبعیعض که راحت داشته باشید؟ کسی از آبادانی به خرابه نمی روه تو خودت میدونی؟ دونی وقت وقتی رو با محابی حکومت مصر رو بگیره محابی گفت زیاده تو گفت من حکومت مصر رو میخوام با خراجش مالیتی گفت بابا زیاده گفت من با علی جنگیدم آخرتی برام نمونده می دونسته چگار کرده معامله کرده دیگه و هفته قبول ندش یکی می دونه این اما این راه اباد کرد اون طرفو فلان <تصفيق> یکی از نمیم علمای شیعه علامه سید محسن حکیم بوده میره عربستان ظاهراً بوده بعد مفتی بزرگی اونجا دعوتش میکنه مارمزون میگه جنیتم داره قهوه میخوری گفتم حالا مریضی میخوای یه چیز بخوری بخوریم که درست چرا روزه دارین کار بکنی میگو من روزه نیستم مثلا مریض هستم گفتم بچه‌گو من میدونم حق با شماست من اینکه جهنمی حالا یکی گیرم رو روزه گشنگر برای چی بکشم و گرفتیم آره پچه رو پچه را گفت و چرا نمیان این طرف گفت من بیام تازه میشم یه طلبه سف کیلومتر تو شما سیستم را اینجا حالا برا خودم مفتی اعظمم <تصفيق> آره مواردی از نقل شده مثلا طرف را داشتن تلقه نش میکرد میداشتنش تو گور دور بریش این ای دن اه دارم که حالی بر حق داشته باشه این خوبوش شد گفتی الان درست جاواشو میدم مثلا فکر کن اینجوریه <تصفيق> عجیبه <تصفيق> خیلی اینجوری داریم مگه نبود تو عاشورا اینج گوشواره رو میگفت میخواست در بیاره گریه میکنه گفت چه گریه میگم گفت شما عائله رسول الله شما خانواده رسول الله گفت چرا این کارو میکنی میگه من نكنم دیگه میكنه همیشه توجیه هست آه رشوینی هدیه است. من نگیرم یکی همکار بقلیه میگیره همیشه هست بروست میگه از آبادانی که میره به خرابه <تصفيق> اینجا دفتر دسته و استاد مستاد به چه طرف درفت دکتر مکتر برش گفتن برو کجا امیر مامنام میفرماد که آیا کسی نیست که از گناه توبه کند پیش از آن که مرگش برسد بدانید که شما در روزهایی به سر میبرید که فرصند ت یه از این فرصت استفاده کنید اون درست کنید چنج کنید پولاتون رو پول اون اسمش سبابه حسابتون رو پر کنید راحت بیتونید خرید کنید اون طرف بیتونید سختی رو بخرید پول بدید رد کنید جمع کنید سباب جمع کنید بر خودتون و پس از این روزهای مرگ فرامی می رسد شما را فرمودن که بار بر بندید و توشه برگیرید من بر شما از دو چیز بیشتر میترسم دنبال هوای نفس رفتن و آرزوی دراز در سر پرور ردن به فرموده خدابند این گروه از زندگی دنیا ظاهر میشناسن در حالی که از آقا آخرت قافلن یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت مقافلون و هم عن الاخرت هم غافلون هم هم هم, هم. میبینید آخ اینا آخ اینا آخ اینا خدا خدا در این آیه قرآن حدیث نیست و گروه سبه مومنان حقیقی اینا کامل مطمئن با قلبی آرام میمان دارم میرم از مرگ کراهت ندارم عاشق که اما ازش وحشت و خوف دارم یعنی چی؟ ترس اینا ترس ممدوهه ترس مد شده است, است. مثل برای چی برای اینکه میدونن به ملاقات کی دارن میرن یا عاشقی میخواد بره دیدار معشوق از یه موقعbij رو ویبره است سربازم درسته آخ این جوشه اینجا در اومده نمونه جوش عروسی میگن جوش تولد میگن چی چی میگن همیشه مشاور عروسی سر کلاش بدم میشه نمونه صبح داره اینجا استرس داره دست و پاش میلرزه عاشق اوست جونش رو میده برای اوه اما دست و پاش داره می لرز رعشه به صداش افتاده نمیتونه تونه رو بزن این ترسه از حیبت اون حیبت آدم به خوف مبتلا میکن این آدمه کاملی هست با دو تا بال خوف و رجا با هم پرواز بکنه میگه موسی علیه السلام گو خدا میخوام بیکر بهترین بنداتو ببینم نشو میده برو جلو زده چیز وایستا دروازه شرواسی پیرمردی دست نواش افتو گفت گو گناهکارترین بندات گفت اینو ببین دیدش گو حالا میخوام بهترین بنداتو ببینم گفت برو شب وایستا جلو داره همونجا هم همین پیرمردو با زهرارش گو خدا قصه شه. گفتیم که داشت میرفت نوازش ازش پرسید که بزرگترین و مثلا بدترین چیز چی رو پدر گفت منم و گناه های منه گفتیم موقع برگردن برگردن گفتیم از اون بزرگتر هم گفت آره مغفرت خدا رحمت خدا این دوست تو هم قابل جمعه اهل بیت گریه میکردن که چرا کمتر نماز خوندم امام حسین می میریزه برای این که دعای عرفه شده قد کردید چیه؟ اما خیلی از روزها به اون نرسیده ها چه تا پاک شده رفته اما بعض از روزها رو میشه فهمید از کجا؟ من میگم برید دعای عرفه رو بخونید اون همه روزهای بلاهایی که سر امام حسین رو... شما چیزی در راجعه پره بینی عبا عبدالله تو روزها ندارید اما تو دعای عرفه میگنید دارد به پره بینیش اشاره پ اون میدونه چه داره با... اینا داره عشق میریزه ابو عبدالله دیدید اتفاقشو حضرت زینب سلام الله علیه رسی چی میفنه دست میبذر پیکر متحر میاره بالا چی میگه؟ یه تقبل من نهاز الغلیل. این یه کم ما کار نکنیم ببینید شما در مقابل بینهایت هر چی باشی بازم چیه هیچی کمی. ما درکی از اون بی‌نهایت نداره. ما تا بهمون میگن خدا بزرگی فقط ارتفاع میفهمه. ما, ما معیوب فهممون. فهم فیزیکی جرمی جسمی داریم، نمیتونیم بفهمه بزرگ یعنی ارتفاع. ناخداگا، حالا این کره زمین اون یکی داره به اون ور نگاه می‌کنه، به بالا دیگه خدایا. این یکی چی اون ور تو آمریکا؟ دقیقا سرتر داره اون داره اونوری می‌زنه. بالای اون دقیقا پایینه یکی دیگه <تصفيق> ما فهمون اینه هم بلند برژ ملاد بشر همی اهرام میساختن می ساختن مثلا بزرگی خودشو نشونه و فرعون از الاوتاد آبلیسک می ساختنی می تو زمین می شون. ایرم از آت العماد ستونها آنچنانی سنگی ببینید درکه بزرگی نداریم اونی که درکه از بزرگی داره حضرت موسا قفلی زداد میخوام ببینم دیگه که بابا لند ترانی موسی موسا اصلا دیدنی نیستم چماری نمیشه لن نفی یه لله یه جلوهی کرد بکن افتاد رفت کما حضرت موسا سعقا قشکر افتاد بقیل دسته که مردن هفتاد تاشون یه با تا هفتاد تا چقدر هفتاد مردن نمورد بحث هم من الان اینا رو چیکار کنم خدا برم به این قوم بحانگیر چی بگم که خدا اجاز کرد اینا رو زنده شدن یه جلوه تازه در مورد اون جلوه هم بحث ها نکاتی داریم تا عدبتی دین خدا میکن باز میگیم جلوه خدا یه ربطی باز به اون درخته داشت به داشت یا جلوات اون شجره بود اون کوهن برای که مش قشق پس چرا من یه تایمی ندارم برای گریه کردن برای مام نه برای مام گریه کن که بتونی برای خدا گریه کن دا کمیلو بخون فرازای شد چک بکن تا بتونی برای خدا گریه کنی اسم امیرالمومنین بیار که بتونی برای خدا گریه کنی من بارها عرص کردم تو حج از گریه توی نماز لازم نبود دست و پای نفر نگاه کنی دست و شالا ماستن از توی گریه نمازش می فهمیدی که شیه از که نیست مثلا عجیب بود اینا نماز می عین ربات گفت بردار بینشان دره چیز اینو یه دونه ربات بذار می دیدی روحو نداده یا به معقل مگه چی میگه این ابن زیاد میگه میخواد شیان علی رو پیدا بکنی بفهم یک کجا مسلمون پیدا کنم میگه تو مصیبی کی درست حساب نماز بخو همین تذکر برای خودم هم برای شما که آقا این تایمی که ما نیاز به راز و نیاز با خدا داریم این در روز نیست آقا نمیشه واقعا سر و صدا و مشغله و موبایل و فلانی بعد یه تایمی که همه خوابن اسمش نماز شبه نیگه با وظیفمون و وظیفه من انجام با هر چی که تو رو بسلت می کنه قبلش یه روزه بذار گوش کن دو دقیقه دلت نرم بشه سختم شروع نکن از یه دقیقه دو دقیقه هندقه قبل خواب شروع بکن حتما هم با عشق محسن شروع کن تا دلت رو نرم کنه برای چرا از آتش میرهانه؟ همین همینه این دلار می بارد. کل کربلا رو جمع میکنه عشق میریزی دیونت میکنه بعد یا میری خود این آقایی که تو اینجوری مستشی تو گودال داره برای یکی دیگه مده یکی دیگر داره میمیشه اصل اوست اهلویت مقصد که نیستن که این باشه شرکه نه آدرس میدن سفینت نجاتن جمع میکنن با خودشون کمک همون که میبرن به جایی که من و شما باید برسیم اونجا که من و شما باید برسیم کیه حالت ایدال خودشون از این جهت مقصودن. اللهم عجل ولیه که الفرج والافیت و النص رجع خیر من خیر عوانهی و انصاره والمستشدین تجد الفرج قطب آلام امکان از ولی علیه سلامتی نبیر